اسکوگ جوان و فرهنگ به نام خدا آن یگانه مهرافرین سلام رمیه هزار افسون رو با این جمله آغاز میکنیم که زندگی کونی ما هم به طور حتم روزی برای آیندگان قصه و افسانه خواهد بود و ما افسانه ما برای شما همراهان ادب و فرهنگ دوست رادیو جوان افسانه ایرانی که براتون نقل میکنم به نام افسانی بز لنگی برگرفته از کتاب قصه های آمیانی مردم ایران به منو چکر سریمی روزی روزگاری در شهر دور افتادهی حاکمی زندگی میکرد که چند پسر داشت حاکم شب و روز دعا میکرد که به اون فرزند دختری عطا کنه اما هر چی میکرد دعاش مستجاب نمیشد و فرزندان بعدیش هم پسر میشدند تا اینکه زنش یه بار دیگه پسری به دنیا آورد و حاکم از روی ناراحتی دست به آسمون بلند کرد و از سر ناراحتی گفت خدایا اگه به من دختر نمیدی لاقل این دفعه بز لنگ بده مدتی گذشت و بالاخره بعد از نه ماه و نه روز زن حاکم یه بز لنگ به دنیا آورد یعنی همون چیزی که حاکم از سر ناراحتی از خداوند تقاضا کرده بود وقتی که روز اول تولد بز لنگ تموم شد و هواتاری شد مردم شهر هم بعد از جشن و پایکوبی و شادی خسته بودن و به خواب سنگینی فرو رفتن و شهر کاملا آروم بود در این موقع دختر حاکم یا همون بز لنگ غنداق خودش رو باز کرد و به شکل هیولا از خونه بیرون رفت و به محلی که گوسفندهای حاکم قرار داشتن رفت و نصف بیشتر گوسفندا رو تکه پاره کرد و خورد و بعد از آن به خونه برگشت و آروم رفت توی قنداق خودش بند اون رو بست و راحت گرفت خوابید صبح زود بود که خبر پاره کردن گوسفندها به گوش حاکم رسید حکم بدون اینکه ناراحت بشه گفت هیچ ایبی نداره هیچ بلایی بود که سر دخترم گذشته همه گوسفندام فدایی سر دخترم شب بعد هم دختر نصفهای شب بلند شد و راه افتاد این بار به سراغ گاوهای حاکم رفت نصفی از گاوها رو تکه پاره کرد و خورد و بعد دوباره برگشت خونه و راحت توی قنداقش گرفت خوابی فردای اون روز وقتی خبر تکه پاره شدن گاف ها به حاکم رسید حاکم باز هم بدون اینکه خم به ابروش بیاره گفت گاو چه عرضشی داره فدای سر دخترم اصلا تمام زندگی این فدای سر دخترم بلایی بودی که از سر دخترم گذشته پسر بزرگ حاکم از شنیدن این حرف ناراحت شده گفت پدر تو خودت این رو از خدا خواستی حالا میگی بلایی بوده که از سر دخترم گذشته و بعد با عصبانیت اضافه کرد اصلا همین دختره که گاوا و گوستند رو خورده من مطمئنم کار خودشه حاکم از شنیدن حرف پسر بزرگش ناراحت شده گفت این چه حرفیه که میزنی بعد از اون همه نظر و نیاز خدا این دختر رو به ما داده. حالا تو چشم دیدنش رو نداری و بهش توهمت میزنی و خوهرته دست از حسادت با اون دختر معصوم بردار پسر پسر بزرگی حاکم گفت پدر من به اون حسادت نمی کنم. من یقین دارم که اون اما حاکم با عصبانیت کلام پسرش رو قطع کرده گفت بس کن دیگه حسادت و بغز و کینه از سر و صورتت میباره این رو بدون که این دختر بیشتر از تو و برادرهای دیگت برای من عزیزه اگر تعمل دیدنش دیدنشون نداری میتونی از اینجا بری اینجوری منم دیگه تو رو نمیبینم پسره هست پسر بزرگی حاکم با شنیدنی این حرف پدرش در حالی که سخت ناراحت و دلیر بود از شهر دیارش بیرون پسر حاکم از شهر پدرش بیرون رفت تا به شهر دیگه ای بره. وقتی که با دلتنگی و نومیدی از بیابون میگذشت هفت دونه هسته خورما به فاصله های نزدیک در زمین کاشت و گفت خدایا از تو میخوام این هسته ها رو باربر کنی تا نخل بزرگی بشن و موقع سختی و گرفتاری به داد من برسن و درد منو دوا و بعد رفت و رفت و رفت اونقدر رفت تا به شهر دوری رسید و در اون جا موندگار شد پسر در اون شهر به بازار رفت و از مردی که انباع حیوانهای دنیا رو داشت، سه شیر به های شیر واشیر و کل شیر خریداری کرد و مدتها صرف تربیت اونها کرد تا در موقع سختی به کمکش بیان مدتی گذشت کم کم پسر حاکم دلش برای خانوادش تنگ شد و با خودش گفت ای خدا خیلی وقت از پدر و مادر و برادرانم بیخبرم نمیدونم سرونه چی اومده ره باید به دیدنشون برم بعد به بازار رفت و یه دنبه گوسفند خرید و جلوی در خونش آویزون کرد و به همسایش گفت همسایه من به شهر و دیار خودم برمیگردم هر وقت رنگ این دنبه گوسفند قرمز شد شیر و شیر و کله شیر رو به کمک من بفرست به بعد هم سبار عهض شد و به طرف شهر و دیار پدرش براه افتاد سر حاکم رفت و رفت و رفت تا به شهر پدرش رسید دید تمام شهر ساکت و آروم و خاموشه و هیچ صدایی به گوش نمیرسه نه از از انسانه و نه از جانور همه جا رو گشت ولی هیچ کسی رو ندید به جز لنگی یا همون خوهرش. با خودش گفت معلومه توی این مدت این بوز لنگ هرچی بوده خورده بیچاره پدر و مادر و برادرام بیچاره مردم شهر بوز لنگ تا چشمش به برادرش افتاد با خوشحالی به استقبالش اومد و گفت برادر عزیزم این همه مدت کجا بودی که من تو رو ندیدم؟ بده بده اسبت رو ببرم سر آخر ببندم و پسر اسبش رو داد دست خواهرش. و اون هم اسب رو به طرف آخور برد و چون گرسنه بود وسط راه اسب رو خورد و برگشت پسر حاکم فکر کرد ممکنه همین الان خواهرش اون رو هم بخوره و برای اینکه اونو سرگرم کنه و فرار کنه به خواهرش گفت خواهرجان من خیلی تشنم این قربال رو بگیر و برو کمی برام آب بیار تا بخورم بوز لنگ هم یه تشت و چوب آورد پهلوی برادرش گذاشت و گفت با این چوب برای من دایره بزن که من خوشحال و شاد بشم و بعد قربال رو برد تا برای برادرش آب بیاره اما هر کاری میکرد آب توی قربال نمیمون در همین موقع مومشی از سوراخ دیوار بیرون اومد و به پسر حاکم گفت ای پسر حاکم اگه بوز لنگی برگرده بدون و رو برگرد تو رو میخوره بهتر هرچه زودتر از اینجا فرار کنی پسر حاکم گفت اگه من برم صدای زدن روی تشت قط میشه و اون وقت خواهرم متوجه میشه که من از اینجا رفتم موش گفت نگران نباش من با دوم خودم روی تشت میزنم تا صدای اون به گوش بوز برسه و فکر نکنه که تو از اینجا رفتی پسر حاکم هم قبول کرد و زود از اونجا فرار کرد و رفت بزلنگی سر چشم نشسته و غربار رو جلوی آب گرفته بود ناراحت بود که چرا آب توی قربال نمیمونه از طرفی هم گرسنگی بهش فشار آورده بود و نمیدونست چیکار کنه به آخر طاقتش تاق شد و قربال رو انداخت و رفت سراغ برادرش ولی از از اون ندید ورن رفت در یکی از خونه شهر که از همه بلندتر بود و خوب اطراف رو نگاه کرد و دید بله برادرش داره با شتاب فرار میکنه. کنه لنگ فورا از بوم پایین اومد و دنبار برادرش به راه افتاد خب اگه یادتون باشه براتون گفتم که وقتی پسر حاکم از دست پدرش ناراحت شد از شهر و دیار پدرش بیرون رفت و توی راه هفت دونه هسته خورما وسط راه توی زمین کاشت و از خدا خواست تا اونها رو بارور کنه تا در موقع گرفتاری به کمکش بیان حالا وقتی رسید به اونجا دید بله هستها هفت نخل بلند شدن پشت سرش رو نگاه کرد و دید ای داد و بیداد خواهرش داره به اون نزدیک و نزدیک تر میشه و چیزی نمونده که به اون برسه پسر حاکم با قدم ها و یه شتابان خودش رو به درختان نخل رسوند و رفت رو یکی از اون‌ها. خواهرش یا همون بز لنگی رسید زیر درخت خرما و, و با دندونای تیزش شروع کرد به جویدن و قطع کردن درخت. دیگه چیزی نمونده بود که پسر از درخت بیفته پایین. در این موقع پسر حاکم خودش رو به روی درخت بعدی رسوند. بز لنگی مشغول جویدن درخت دومی شد. پسر پرید روی درخت سوم و خلاصه همینطور پیش رفت تا رسید به درخت ششم در این موقع مرد همسایه اومد سراغ دنبی گوسفندی که پسر که موقع برگشتن به شهر و دیارش بالای در خونش آویزون کرده بود و به مرد گفته بود هر وقت رنگ اون به قرمزی رسید فورا زنجیر سهتا شیرها رو باز کنه حالا وقت این کار بود مردم مردمسعی وقتی دید دنبه مثل خون قرمز شده زود رفت زنجیر شیر و با شیر و کل شیر رو باز کرد و به کمک پسر حاکم فرستاد بوزرنگی همچنان در حال جویدن درخت های نقل بود و بالاخره رسید به درخت هفتم و شروع کرد به جویدن اون یه دفعه شیر واشیر و, و کله شیر از راه رسیدن و به طرف بوز لنگی حمله ور شدن بوز لنگ شروع کرد به التماس که ای برادر چان تو رو به جان مادرمون نذار این حیونا منو بخورن ازت خواهش میکنم من از این شیران نجات بده پسر حاکم یک آن دلش به حال خواهرش یا همون لنگی سوخت و از شیر خواست تا اونو آزاد کنن و کاری به کارش نلشته باشد. شیرها هم لنگی رو آزاد کردن و کنار رفتن. اما لنگی به محض رها شدن از شنگار شیرها دوباره شروع کرد به جویدن درخت هفتم یعنی همون درختی که برادرش روی اون بود. پسر حاکم هم فورا به شیرها گفت. امونش ندین، بهش حمله کنین، اون ذاتش عوض نمیشه و دوباره شیرها به بزلنگی حمله بر شدن در این موقع بزلنگی رو به برادرش گفت برادر، معلومه که حالا دیگه کار من تمومه و این تا شیر منو میخورن ولی اینو بدون که توی شونه راست من مهرهی وجود داره که اگه اونو بکوبی و توی چشمه شهر پدر آب بکشی همه مردم شهر دوباره حیات پیدا میکنن و چند لحظه بعد چیزی جزی مشت و سخون از لنگی باقی نموند. پسر حاکم اون مهره رو از شونه بزلنگی درو برد و برد شهر پدرش اون رو خوب سایید نرم کرد و ریخت توی آب چشمه. یه دفعه دید پدرش ای کرد و بلند شد و گفت عجب خواب سنگینی رفتم. و هم همه مردم در فضای شهر پیچید و زندگی رنگ گرفت. پسر تمام اونچوری که اتفاق افتاده بود برای پدرش تعریف کرد. پدر از اینکه با پسرش رفتار خوبی نداشت و اونو از شهر و دیارش بیرون کرده بود، عذرخواهی و, و طلب بخشش کرد و همه یه بار دیگه در صفا و خوشی و خوبی زندگی کردند. افثانه ایرانی بزلنگی رو براتون نرد کردم برگرفته از کتاب قصه های مردم ایران به گرداوری چهره چهر زریمی نبار شاعر معروف روسی میگه افسانه‌ها ها و قصه های آمیانه معنایی پنهان دارند و برای این همیشه در قصه های آمیانه و افسانه‌ها ها برای اندیشیدن وجود داره این قصه ها و افثانه ها غنی و سرشار از تخیلند نه تنها حس کنجکاوی ما رو برمیانگیزند بلکه به تخیل آدمی هم پروبال میدند و برای همیشه در قلب آدمی جای میگیرند هزار افسان کار مشترک است از نویسنده زینت سالک پور بیراستار آور اجرا مهران دوستی سه‌مردار عطیه زاهدی ایی زهرا زهره عبدالله ساتی تا افسانه‌ای دیگر بدرود.